منه روشن. من رو ببینید، دا من اون رو به دوستان صدای منو میشنونن؟ انتها تا بس نمیوتی حسش ما من همون پای تابلو میبینم مهم رفضا هم که ببینم اشکالی ندار بعد خوبه خیلی ما فقط با این حرکت میکنه بحث درست خواهش السلام عليكم جميعا وعظ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سكتنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بقيه الله في الأراضين روحي وارواح العالمين له الفداء فيلي خوشبختم از اینکه در خدمت سروران معظم طلاب و فضلای گرامی نور عزیز در این جلسه ای که حالا به عنوان جلسه افتتاحیه مطرح هست است هس فرصت اندک هست من بی مقدمه میرم سراغ اصل مسیح صلابات دیگری خط به قرمه فقط قبل از که بحثمون رو شروع بکنیم یه فایلی رو دوستان زحمت کشتن آماده کردن حتی من خودم ندیدم فایل رو لزاخ انشاءالله فایل مطمئنی باشه ارز کنم که و داخل کانال گذاشتن کاناله ایتای مربوط به همین دوره تقاضا میکنم دوستانی که حالا موبایل دارن این فایل رو در اختیار داشته باشن دانلود بکنن حجمش خیلی زیاد نیست نگران بسته اینترنتتون نباشید تا کنم که کم مصرف میشه آقا نظر شما همینه خیلی خوشحال شدم خیلی بحثمون رو آغاز بکنم بنا امر الهی نسبت به تفقه در دین در آیه شریفه نفر آیه 122 سوره مبارکی توبه آیه‌ای که پیش روی شما هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لينفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون بنابر این آیه و نصوص روایی و احادیث فراوانی که علاوه بر این آیه بر لزوم پرداختن به فقه دین و تفقه در دین تاکید می‌کنند واجب هست که دست کم ای از مؤمنین و مسلمین بندازه اندازه کفایت یعنی من به کفایه به عنوان یک واجب کفایی به تفقه در دین یعنی تلاش برای دست‌یابی به شناخت و فهم دین و به اصطلاح دینشناسی و اسلامشناسی عمیق مشغول بشن نکته مهم این هست که در آیه نفر همین آیهی که مشاهده می کنید لیتفقهو فدین، کلمی ادین آمده است همچنین در شمار زیادی از روایات فقه و تفقه هم باز کلمی ادین آمده است کلمی ادین به اصطلاح ما تلق است یا به اصطلاح مشکور مطلق است یعنی مقید به هیچ قیدی نیست اختصاصی به بخش خاصی از دین ندارد فقط احکام شرعی نیست اددین یعنی تمام دین یعنی کل دین طبعا نتیجه تفقه در تمام دین و نه فقط در بخشی از اون می شود فقه دین به معنای اهم الفقه بالمعنه الام فقه دین به معنای اهم عبارت است از فهم و شناخته قائد منده هران چه خداوند به عنوان دین نازل فرموده است. شما معنزل الله رو هرچی که خداوند نازل کرده، هرچی که هست، این رو وقتی به خوبی شناختید، یعنی تفقه در دین کردید، فقه دین رو به دست آوردید. به عبارت دیگه، فقه دین به معنای اعم، یعنی اسلام شناسی کامل و همه جانبه و شامل آگاهی و معرفت نسبت به هر شاخه از تعالیم و آموزه های اسلامی عمد از الهیات و معارف احکام شریعت و اخلاق البته اینها یه تقسیم بندی از قدیم بوده تقسیم به فقه اکبر و فقه اصقر فقه اکبر منظور امور نظری و علمی بوده و فقه اصقر امور عملی و عملیات بوده که خود فقه اصقر اهم بوده است از احکام شریعت و اخلاق به این شکل تقسیم می‌کردن فقه اکبر فقه اصغر اما اگر ما بخوایم هر سه بخش رو از هم دیگه جدا کرده باشیم میتونیم به این شکل بگیم فقه اکبر عقاید و الهیات فقه اوسط احکام شریعت و فقه اصغر بفرمایید که اخلاق چرا این تقسیم به این صورت گرفته است اکبر اوسط اصغر خب طول می‌کشه توضیحش بنابر برخی از ادله این شکل در اومده چه با اندکی مسامهه بتونیم متناظر با این شاخه و سهوزه از معارف اسلامی و الهی از تعابیر زیل هم استفاده بکنیم کدوم تعابیر بگیم اون قسمتی که مربوط به فقه اکبره در حقیقت نظام اندیشه ها شناخت ها بینش ها و باورهای بنیادین رو پوشش میده اون قسمتی که فقه اوسط هست نظام رفتار ها رو پوشش میده و اون قسمتی که فقه اصغر هست نظام منشها و گرایش ها و با مصامه نظام ارزش ها رو پوشش میده بر اساس چنین بینشی که قرار است ما تفقه در دین داشته باشیم در تمام دین در تمام ما انزل الله تفقه بکنیم برای به دست آوردن فقه دین بالمعنه الاعم بر اساس چنین بینشی کلان نظریه یا فرانظریه تفقه جامع این شکل گرفت آرمحضر مبارکتون که تفقه جامع به طور خلاصه عبارت است از اسلام شناسی اجتهادی جامع به تعبیر دیگر تفقه جامع یعنی تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی ما بخش خاصی از دین رو انتخاب نمیکنیم تحقیق در همه دین است و این تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه ابعاد زندگی است نه یک بعد خاصی از زندگی دونا بعد دیگر در بیانی تفصیلی تر اگر من بخوام در مورد تفقه جامع صحبت بکنم این می اینطور بگم تحقیقی همه جانبه و فراگیر در تمام دین الهی و معارف ربانی مشتمل بر کلیه های اسلام در ابعاد اندیشگی، شناختی، بینشی و پوشش دهنده باورهای بنیادین، گرایش ها و رفتارها بقایت تحقق در جان و کالبد فرد و جامعه و اجرا و عملیاتی شدن در تمامی اجزا جوانب و سطوح حیات حالا همون عنوانی که پای تابلو هم در این اسلایت هم مشاهده می کوتاه کتاکتر هست به نظرم بیشتر یادتون می مونه اسلام شناسی اجتهادی جامعه یا تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی انایت داشته باشید که وقتی از تفقه جامع ما سخن میگیم در واقع داریم از یک طرح کلان فکری و علمی در حوزه دین پژوهی معرفت دینی و اسلام شناسی سخن میگیم که اگر بخوایم اون رو با عنوان یک نظریه معرفی بکنیم چه بسا باید اون رو یک کلان نظریه یا فرانظریه بنامیم از وسان کسی هست که بداند کلان نظریه چیست فرانظریه چیست به لحاظ فنی به اصطلاحی در ذهن مبارکتون هست کلان نظریه به چی میگن قران به چی میگن بفر حالا بگید در خیلی خوب دست شما درد نکن خیلی ممنون دیگه نظری کسی نداره آقا من هنوز آور نریخم کلی ما شما اگر نظرات سوی بفرمایی ممنون میشن ایک سلاماتی خط به فرمایی سلاماتی این جلسه اول این دوره هستش حالا یه خود یخهای رفقات باز بشه دوستان هنوز اول صبح هم هستش اصلا هم ندارن اینجا کجاست ما کجاییم اینجا کیه از توضیحاتی هم که براشون داده شد به عنوان معرفی اینجا که فکر نمی کنم کسی چیز زیادی متوجه شد اصلا حتی که بنده که هرچی گوش کردم خیلی متوجه نشدم خالا که بیشتر ابهام رفقا بیشتر شده از کاختی که ولی حالا بحث تخطیر اجمال قصه صلواتی خطبه فرمایید الله الله توصیف تفقه جامعه به عنوان کلان نظریه به جهت گستردگی قلم رو به اون هست به تعبیری داریم گرنسیری یا کلان نظریه یک نظریه بسیار بزرگ و وسیع رو داره قلم رو به گسترده رو اصطلاحاً بهش میگن گرنسیری یا کلان نظریه اما عنوان فرا نظریه وقتی به کار میره با لحاظ این نکته است که تفرقه جامع خودش به تنهایی در بردارنده نظریات متعددی در حوزه دین و معرفت دینی و شامل طراحی چارچوبها و الگوهایی جهت جریان و تحقق دین در حیات فردی اجتماعی بشر و در واقع یک بسته نظری معرفتی و روشی و مجموعی از نظریات چارچوبها، الگوها، تبین ها، تعریف ها، و صورتبندی ها در زمینه اسلام پجروهی و اسلام شناسی تخصیصی و اجتهادی در پهناورترین پهنه ممکن هست پس وقتی ما میگیم کلان نظریه یعنی یک نظریه است، اما بسیار قلم رو بسیعی داره وقتی میگیم فرانظریه یا متاسیری یعنی یه تره است که در زیر مجموعه خودش نظریات و الگوها و مدلهای فرابانی رو در اختیار داره خب برای اینکه هستی زودتر برسیم به بحث مد نظر خودمون فقط به یکی از این نظریات و الگوها و چارچوبهای فکری که در زیل کلان نظریه یا فرانظریه ی تفقه جامع قرار داره اشاره میکنیم و اون عبارت است از نظامسازی اسلامی مبانی اصول و مراحل عملیاتی یافت و ساخت نظام های اجتماعی بر پایه اندیشه، معارف و تعالیم اسلامی. قبل از توضیح درباره نظام سازی اسلامی بر اساس کلان نظریه تفقه جامع باید عرض کنم که وصف جامع در عنوان تفقه جامع ار منظرل مبارکتون که, بله که دیده نمیشه. وصف جامع در عنوان تفقه جامع، به شش امر نظر داره یا به تعبیر دیگه متعلق جامعیت در تفقه جامع شش امره یک دین در دین گفتیم جامعیت ناظر به دین یعنی چی یعنی همه دین نه یک قسمت خاصیش هر چی که در دین هست هر چی که خدا نازل کرده هر چی که از منابع دینی قابل استخراج هست نه فقط احکام دو انسان همه وجود انسان هم بوده مادیش هم بوده معناییش همه انسان‌ها در همه جای جهان در همه طول تاریخ این جامعه نسبت به انسان سه زندگی نه یک بُعد خاصی از زندگی نه یک سطح خاصی از زندگی همه ابعاد زندگی و همه سطوحش چهار منبع و دلیل به لحاظ منبع و دلیل هم جامعیت وجود داره مثلا فقط منبع نقلی نیست یا فقط من به اقلی نیست در من به اقلی فقط اکتفا نمیشود مثلا فرض کنید که به قیاس برهانی از سایر زمینه ها هم در جای خودش استفاده میشه یا از روش های اقلایی یا از تجربیات متراکم بشری در عرصه های مختلف همه اینها به عنوان منابع شناخته میشن پنجم روش به لحاظ روش هم همینطور در زمینه روش هم این جامعیت وجود دارد ششم به خروجی جامعیت هست یعنی خروجی های فراوان و سمرات فراوانی از تفقه جامع گرفته میشه که یکیش همین نظامسازی اسلامی هست تفقه جامع در دین الهی ما رو به این حقیقت رهنمون میشود که خداوند تبارک و تعالی دین رو به صورتی جامع برای در برگرفتن همه زندگی نازل کرده و مطلوب الهی تدیون کل حیات پس اگر کسی بگه آه انسان باید متدین بشود در کجا؟ در امر عبادتش، در امر معاملش، در امر نه، در همه حیات. کل زندگی باید متدین بشود. حیات ما حیات دیندارانه باید بشود. شمول دین نسبت به زندگی و جامعیت اون ناظر به حیات که از راهبر تفقه جامعه در دین به دست میاد و کش میشه شامل دو بُعد بفرمایید که افقی و عمودی است. جامعیت ناظر به حیات در بعد افقی عبارت است از شمول نسبت به همه ساحات اجزا و زوایای حیات بشر شامل عرصه های مثل امرار معاش کسب و کار، خرد و خوراق، پوشش، امنیت بهداشت و سلامت، مسکن، آداب و رسوم، تعلیم و تربیت مدیریت، سیاست، جنگ، صلح و غیره همه ابعاد رو شامل میش. یعنی از خرد و خوراک شما تا جنگ و صلح کشور شما همه رو در بر میگیره این همین مش ابعاد زندگی جامعیت ناظر و حیات در بود عمودی شمول نسبت به همه سطوح و طبقات حیات بشر هست اگر ما بخوایم طبقاتی برای حیات بشر ذکر بکنیم میتونیم پنج طبقه ذکر کنیم پایین ترین طبقه که محدودترین طبقه هم هست طبقه زندگی فردی سطح فردی زندگی است سطح بالاتر از اون که گسترده تر میشه سطح خانوادگی است پس از اون سطح اجتماعی است پس از اون سطح حکومتی است یا حکومی است و پس از اون سطح حواری یا تمدنی هستش این پنی سطح سطح زندگی هستن خب الان برگردیم به بحثمون ما گفتیم به لحاظ افقی همه زوایا رو دین در بر میگیره به لحاظ عمودی همه سطح رو همین ساختمانی که الان شما داخلش قرار دارید عنایت داشته باشید این ساختمان چند طبقه است خوب. هر طبقه رو شما یک سطح در نظر بگیرید باز در هر طبقه اتاق‌هایی وجود دارد زوایایی وجود دارد فرض رو فرمایید که اگر یه بفرمایید که مثلا بخواد اینجا رو فرش بکنن میگن ما همه طبقات رو فرش کردیم و در همه و در هر طبقی هم همه همه قسمت‌هاش رو این نیست که مثلا در طبقه اول فقط یه که فرش گوشش انداختیم نه فرش کل طبقه اول رو گرفته مجددا طبقه دوم فرش کل طبقه دوم رو گرفته و حاکزا. دین به این شکل باید عمل بکنه و عمل میکنه. یعنی همه سطوح و در هر سطحی هم همه عباد رو و همه زوایار رو پوشش میده. ما به این میگیم جامعیت دین. او چیزی که در تفقیه جامعه هم به دنبالش هستیم. خب اگر ما در فیه تحقیق در همه دین برای تحقق، در همه زندگی هستیم یعنی همون عمری که در نظری تفقیه جامع مطرح هست باید بدونیم که تحقق دین در سطح اجتماعی، حکومتی و تمدنی بدون نظامسازی میسر نمیشه در سطح فرضی و زندگی خورد شاید شما بتوانید کارهای انجام بدید اما اگر بخواهید دین در سطح جامعه اجرا بشه بدون نظامسازی اجتماعی و برپاداشت نظامهای اجتماعی این نشدنی هست در حقیقت ابزار تجلی اندیشه در عرصه اجتماع وجود ساختارهای کلان و نظامهای اجتماعی است شما بارها شنیدید اید میگن توحید باید در همه زندگی جاری باشد توحید باید در جامعه جاری باشد خیلی خوب ما هم توحید جاری کنیم چجوری جاری کنیم؟ هی بیا همدم توهید صحبت بکنیم سخنرانی توهید برگزار بکنیم دوره های توحید شناسی برگزار شکنیم که توهیید اجرا بشه. اگر بخواهد تویید در جامعه جاری بشه این نمی شود از طریق همین نظام ها. یعنی این نظام ها هستند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و خورده نظام ها و نظام های دیگر اینها هستند که زندگی بشر رو اداره می کنن. اگر این نظام ها توحیدی شکل گرفت بر اساس اندیشه توحیدی شکل گرفت وقت زندگی هم توحیدی می شود. این مثال رو دوستانی که حالا بحث های دیگر با بنده بودن زیاد شنیدند فرض فرمایید که از مسائلی که ما درگیر اون هستیم مسئله امروزمون هم نیست از اول انقلاب این مسئله مطرح بوده حالا گاهی اوج میگرفته گاهی فرووب می آمده. الان دوباره در زمان اوجش هستیم ظاهرا مسئله پی و بد و مسائلی از این قبیل هست الان که خب یک شمایل خاصی هم پیدا کرده و به کشف حجاب کامل متجر شده است خب در اثر خیلی از کوتاهی هایی که بوده لاچ همون کم, کم هجابی حجابی یا شل حجابی یا بفرمایید که مسائلی از بد حجابی و هر تعبیری که به کار می‌برند همون رو شما در نظر بگیرید در همین شرایط فر بفرمایید که هر هفته تمام خطبای نماز جمعه در سراسر کشور درباره لزوم رعایت حجاب سخنرانی بکند. تمام سخنران ها سخنرانی بکنند. صدا و سیما شب و روز دمده حجاب برنامه پخش کنه. هی توصیه موعظه نصیحت. آیا حجاب درست میشه؟ درصد بسیار اندک. درصد بسیار اندک. شما گروه های امر و نهی از منکر رو فعال بکنید اینا تو جامعه را بیفتند مرتباً امر برای نهی از منکر بکنند آیا مشکل بیهجابی و بدهجابی درست میشه؟ درصد بسیار اندکی درست میشه چرا درست نمیشه؟ مشکل این است که شما میخواید یه مشکل اجتماعی رو حل بکنید اما با روش های فردی نمیشه موعظه نصیحت. و اینجور مسائل اینا زندگی فردی جواب میده فرد با فرد جواب میده ما الان با یه پدیده اجتماعی مواجهیم این نیست که فقط شما یک خانوم بیهجاب رو ببینی یک خانوم بدهجاب رو ببینی بهش تذکر بدی اگر این بود مشکل حل میشد ما یه خانوم به یه جای بده جایی می میدیدیم بهش تذکر میدادیم تمام می شد ما با یه پدیده اجتماعی مواجهیم با این مسئله یعنی که موج ایجاد کرده برای خودش گفتمان داره برای خودش عقبه فکری داره موضوع موضوع ساده اینست تا نظام سازی نشه تا ابعاد این به شکل سیستمی شبکهی و منظومهی بررسی نشه ورودی ها و خروجی های این سیستم دیده نشه جوانه به اطراف این سیستم مشاهده نشه که اون عوامل تاثیرگذار بر جامعه خود اونیه سیستم در نظر بگیرید یه دستگاه در نظر بگیرید مسائلی که از بیرون روی این دستگاه اثر میذارن. عمموی که در درون این دستگاه هستند و مانع میشن به مشکل ایجاد میکنن تا تمام اینها با هم دیده نشه و بعد مراحلی در نظر گرفته نشه یک ب این مراحل پشت سر همدیگه رایت نشه ما نمیتونیم رو کنترلش بکنیم. ولی بنام نداریم این کار رو بکنیم بنا هم نداریم یعنی کماکان دوست داریم از همون روش های فردیه قبل از انقلابی استفاده کنیم چون آسانتره خیلی تر هستش میگه آقا همکارمونو کردیم جواب هم نداد دیگه مشکلی نیستی ما از گذنونو ساخته ما گفتیم هجاب داشته باشید این هم که ندارن دیگه خداحافظشون تهیدهش به نیرو انتظاهی میگیم کنیم. اونم نمیکنه دیگه کیو دستگیره دست جمعیت زیاد شد که چند نفر رو دستگیر، همه خانوار ها رو دستگیر کنن نمیشه نمیتونه این کارو بکنه دیگه اونم دیگه بی خیالش قدم به قدم ما دارین عقب نشینی میکنیم آیا اینطور هست یا نیست در مسئله حجاب واقعا ما تو این سالها قدم به قدم عقب نشینی نکردیم انجام شد نمیخوام که از خودمون مخفی کنیم ما قدم به قدم عقب نشینی کردیم یعنی هر سال دقیق از پارسال درسته این مطلب خیلی خوب چرا چون اصولی برخورد نمیکنید روش رو درست انجام نمیدیم این نیازمند نظام است چرا؟ پدیده پدیده اجتماعیه. نظام مجموعه ای از اجزا و انواعر مرتبط که برای دستیابی به برایندی مشخص، مشخص، به صورتی منظم و حفظا عمل می‌کنند. یه بار دیگه بگم مجموعه ای از اجزا و انواعر مرتبط. پس مجموعه از اجزا هستند که اینا ارتباط بین وجود؟ دارد مجموعه ای از اجزا و عناصر مرتبط که برای دستیابی به برایندی مشخص پس همشون دنبال یک برایند هستند یک خروجی هستند به صورت منظم و همفزا عمل میکنند نظم بینشون وجود دارد و همافزایی. نه اینکه هر کدوم سمت خودش بره یه دستگاه رو در نظر بگیرید یه ماشین رو در نظر بگیرید یه موتور رو در نظر بگیرید این یه سیستم اجزایی دارن این اجزا با همدیگه مرتبطند. همه دارن به شکل منظم کار میکنن تا یک خروجی حاصل بشه که اون خروجی حرکت این ماشین هست به این میگن یه سیستم به این میگن یه نظام حالا انگلیسی میگه سیستم تبیر عربی یا فارسی تبیر عربی نظام گفته میشه در تبیر فارسی فرنگستانی هم بهش سامانه گفته میشه چنین مجموعه از اناز... اجزا و عناصر رو ساختار هم میتونیم بهش بگیم بگیم ساختار نظام یا سامانه یا سیستم نظام به یک چارچوب و ساختار منظم به هدف من میگویند و تعریفی که میتوان از یک نظام اجتماعی ارائه کرد عبارت است از الگوی متشکل از مجموعه منظم هماهنگ منسجم و به هم پیوسته از باورها و عرضشها برای سامان بخشی به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی در راستای ترسیابی به هدفی مشخص ارکان نظام رو خیلی خلاصه خیدن تو نرز چهار تا چیز ارکان نظام هستن یک اجزا دو ارتباط سه نظم و تنظیم چهار هدف مشترک پس این چهار تا یک اجزا دو ارتباط سه نظم و تنظیم چهار هدف مشترک اینا ارکان نظام هستند در هر نظامی این چهارتا تا باید چا وجود داشته باشه موجود باشه جوهره نظام روابط منظم تابع الگویی خاص بین اجزا این جوهره نظامه وجود روابط منظم بین اجزا این جوهره نظام است نظام سازی به چی میگن به ایجاد چنین مجموعه ای که تا الان توضیح دادیم نظام سازی یا ساختار سازی میگیم تعیین هدف تعیین راهبرد دست‌یابی به هدف، مشخص کردن عوامل و اناسری که در رسیدن به هدف مورد نظر باید به کار گرفته بشن، ترسیم ارتباطات میان عوامل و عناصر به نحوی که بتونن به شکل هم‌افزا و مکمل به فعالیت و نقش‌آفرینی پردازند. تعیین وزن و جایگاه هر عنصر در ارتباط با عناصر دیگه و در کل مجموعه، تعیین سلسله مراتب و روابط طولی و عرضی بین عناصر، تعیین کارویژه هر جز و هر بخشی از اجزا، مشخص کردن عناصر و عوامل جایگزین در صورت نیاز و امور از این دست در نظام سازی و انجام میرسه. در واقع بسیاری از این... شما دستور به سوال اول. آخه من قرار روزه ساعت هفت نیم شروع بکنم ساعت هفت نیم اول هنوز ادامه قرآن بود بعد قرار شد یک خوش آمدگویی باشه یک خوش آمدگویی مفصل انجام شد بعد کفتن حالا خوبی یک خوش آمدگویی دیگرم انجام بدیم خوش آمد دیگه هم باز تفصیل انجام شد درباره برنامه‌های حوزه توضیح دادم رشته های مختلف برا دیگه من فقط من باختم خیلی محدود است بحث زیاد است سعی می‌کنم که یه مقدار سرعت رو بیارم پایین ان شاء که موفق باشی سلامات خط بفرمایید اللهم صل محمد و آل محمد و عجل ببینم در دوره ای که قرار است به نظام سازی به پردازه ما میتونیم یک کار نظاممند سیستماتیک انجام بدیم یا نمیتوانیم حالا بگذت به هر طبیل. خب بر این اساس نظام سازی عبارت است از طراحی الگویی که توضیح دادیم الگوی کلانه که توضیح دادیم در مقام نظر و ایجاد اون در مقام اینیت خارجی از دو تا کار انجام میشه یک طراحی این الگو از رو کاغذ اون الگو کلان رو ما رو کاغذ می نویسیم سالها کار پژوهشی می کنیم ها و گروه های فراوانی کار می کنن. این الگو رو استخراج می و تدوین می کنن. مرحله بعد که از این سختر هست ایجاد این همون الگو در خارجه یعنی همون اجزا همون شرایط همون نویشی در خارج ایجاد بشه تمیعتن وقتی نخواد در خارج اینجاد بشه با کمبود های مواجه میشه با کاستی های مواجه میشه اشکالاتی پیش میاد مجددن نیاز کار پژوهشی داره دوباره برگسی پژوهشی میشه اصلاح میشه دوباره میره محله اجرا یعنی یک نوع رفت و برگشتی یا به قول ما یک دیالکتیک که پیش رونده اینجا صورت میگیره رفت آمده نیاز عرصه پژوهش و عرصه اجرا این که ها به مرور کار استاتیز تس... تس... تس... میشه. اینو چرا عرض می‌کنم؟ برای اینکه کسی تصور نکنند که یعنی امروز ما می‌نشیم دور هم دیگه نظام اقتصادی اسلام رو می‌نویسیم، می‌گیم دست دولت، می‌گیم برو اجرا کن. تمام. نه اینطور نیست. وقتی ما اینو تذبین می‌کنیم بعد بعد به شکل پایلوت یعنی به شکل آزمایشی در یه جایی بعد اجرا بشه مثلا اگر بانکداری اسلامی بخوایم تدوین بکنیم این بال اول در یه منطقه ای در یه شهری روستایی جزیره چنج جای این اجرا بشه باید. خیلی و خوب تا مدتی تا ما بتونیم قلق گیری کنیم اشکالاتشو برطرف بکنیم نقاطشو در بیاریم مجددن به مطول و خصوص دینی مراجعه کنیم دو مختلف کار بکنیم تا آرام آرام این تحر به مختلفی لازم درسه و قابلیت اجرای عمومی رو پیدا کنیم. اگر بتونیم در یک مجموعه انسانی و یا غیر انسانی حتی مجموعه از ابزار آلات و وسایل مکانیکی چارچوب و ساختاری منظم، مرتب و منسجم ترراحی کنیم و برقرار بکنیم که رسیدن به هدفی مشخص و نتیجهی مطلوب رو ممکن بکنه اون وقت میتونیم بگیم که دست به نظامسازی و نظامپردازی در اون مجموعه زدیم. الان این لطاق رو شما توجه بکنید این سیستمه اون کسی که این رو کرده و ساخته در واقع نظامسازی کرده در حال تعریفش کنم؟ این دوربینی که اینجا گذاشتن این یه سیستمه اون کسی که این کرده و ساخته سازی کرده این دستگاه ویدیو پروژکتور یه سیستم هستش این بلندگو یک سیستم هستش فرق بفرمایید تا این ساعتی که با باتری کار میکنه اینجا نصب شده این یه سیستم تمام اینا سیستم اینقدر تعریفش کنم؟ ماشین یه سیستم همه اینا سیستم ما حتی یه ای داریم به نام مهندسی سیستم‌ها جای که این سیستم رو تاحه البته این سیستم های مکانیکی هست سیستم های الکترونیکی هست سیستم های الکتریکی هستش بالا داخل جنبه مادی داره. وقتی میاد تو جامعه، وقتی میاد تو جامعه بشری طبیعتا مادی که اونطور نمییم به شتگاه انسان ها ربات نیستن که ما تنظیمشون کنیم در چارچوب حت کنیم. انسان حشیمون میشه. به فر که ناراحت میشه خوشحال انکیزت زیاد میشه بهتر کار میکنه. انگیزش کم،, کم میشه دیگه کار نمیکنه. گاهی خیانت میکنه، گاهی دزدی میکنه. دق میفرمایید لذا این نظامسازی برای جامعه و برای انسان ها باید به این نکته توجه بشه که ما نگاهمون به انسان نگاه ماشینی و نگاه رباتیک نیست. این هم که مثال میزنری حدیم دردیگاه ها فقط که تریب بده میشه که سیستم منظول چی است ولی طبیعتاً وقتی میخواد توی جامعه اجرا بشه این تفاوت سیستم های اجتماعی با سیستم های مکانیکی و امسالزار طبیعتا متفاوتن. هر جامعه متمدن بش... بشری به نظام سازی در حوزه ها و اقه های متنوع نیاز داره که از جمله حوضه های احتیاج یک جامعه به نظام سازی، نظام پردازی و ایجاد سامانه میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. حالا علا سبیل مثال به قول آقایی مثال ارزم کنیم. یک فرهنگ، دو تعلیم و تربیت، سه خانواده، چهار اقتصاد، پنج سیاست، شش روابط بین الملد، هفت حقوق، هشت امنیت، نه سلامت، ده رسانه و الاخر. اما در خود اینها ما میتونیم طبقاتی در نظر بگیریم و آقا میگم سرعت پایین تر حالا این سرعتش پایی تر ببینید ما چهار کلان نظام میتونیم در نظر بگیریم چهار تا نظامی که اینا سایر نظام ها رو روششیدن نظام اجتماعی نظام فرهنگی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی اینا چهار سامانه اصلی هستند. اینا وستی کار میکنه برپر از یکی. مثلا ما تجربه مندایی بوده حالا بعد تمریک این چهار تا گفتم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. بینا ما میگیم چیا؟ میگیم کلان نظام، های اصلی. مثلا نظام تعلیم و تربیت زین نظام فرهنگی قرار و ها که از نظام ها و انزمه ای که وجود دارن. مبذر مبارکتون که اینا نظام های اصلی هن، نظام های کلام هستن. زیرین این نظام های بعدی قرار میگیرن. حالا چون خورده نظام ها و بعد به همین تحقیق این نظام ها خردتر میشن و در می نتیجه تا تا به موارد بسیار بسیار جزئی برسه. خیلی خوب. حالا این توضیحاتی که عرض کردیم، یه تعریف چند خطیام از نظام سازی اسلامی عرض بکنیم. نظام سازی اسلامی رو ما اینطور تعریف کردیم. ساخت و پرداخت چارچوق ها و ساختارهای منسجم فرهنگی، سیاسی اجتماعی اقتصادی و غیره یعنی چارپه اصلی رو نام یه و غیرم داشت که پرد پس کشم ساخت و پرداخت چارچوق ها و ساختارهای منسجم فرهنگی، سیاسی اجتماعی، اقتصادی و غیره مقتنی بر دیدگاه های استنباد شده الهی نه فقط احکام شرعی نه دیدگاه هایی که دیدگاه های الهی که ما اینان کردیم تو هر قرصه تو ارسه فیخه اکبر تو ارسه فیخه تو ارسه فیخه اصف همه دین ما از همه دین قرار استفاده بگم برای تنظیم و سامان بخشی به اقعاد اوناغون زندگی بشر و جهدهی به انسان در راستای دستیابی به سعادت دنیاوی و اخرابی خب این تعریف طولانیه ولی تقریبا میشه خب جامعه پوششیده سخته در حقیقت این تعریف نسبتاً طولانیه سختی خلاصه است از اون که در نظامسازی اسلامی مبتنی و تفقه جامعه دنبال میشه و, و انجام میرسه نکته اینیه که من اینجا عرض کنم این هست که رفاها حنایت بفرمایید انشاءالله امروز که حالا این جلسه که بنده در خدمتون هستم که آغاز این دوره هستش بعد از این هم حالا من اساسیت رو به بنده معرفی نفرمودن ولی حالا علالقاعده عرض مغذر مبارکتون که دوستان حسنه سدیقه داشتن و دقت داشتن اساتید خیلی خوب انتخاب کردن براتون به هر حال میان رو مطرح میکنند و هر کس متناسب با سطح علمی خودش گرایش هایی که دارد، مطالعاتی که دارد، به هر حال که دارد، مطالبی رو خواهد فرد منتها خود شما این نکته رو حتما پیگیری بکنید ببینید نظام سازی اسلامی مبتنی بر تفقه جامع دارای مسیری کاملا مشخص و مراحل دقیق و عملیاتی ما تمام اینها رو گام به گام استخراج کردیم و بیرون آوردیم. من حالا اگر ببینیم مثلا شما این نقشه، تمام مثلا نقشه تمام این نقشه رو شما مشاهده میکنید. تمام مسیر تو این نچالا روی زمینته مشخص شده. دقیقاً پنج از اونها ما چه مسیری دقیقاً از آغاز طی میکنیم، گام به گام طی میکنیم تا برسیم به نظام سازی اسلامی. حالا یکی که از نقشه از که شما اینجا میتونید مشاهده بفرمایید ما این حرکت داریم این یعنی نظام اسلام. درسته؟ نظام اسلامی میبینیم نه محاله ببینیم اصلا. <تصفيق> <تصفيق> این نظام اسلامی هستش حالا چه عواملی دخیل هستن؟ تا بیر نظام اسلام برسیم از ابتدا تا به اینجا برسه تمام اینها گام به گام مشخص شد این محضر مبارکتون این که دیگه با اگر قبیم محال بود این افقال و تفضیل محاله افقال رتیم اینها محضر مبارکتون که باز همه مشخص شده گام ها مشخص شده بعد نظام جامعه اسلامشناسی تحسوسی مشخص هست که از کجا آغاز میشه بعد به چه نظام میرسد بعد نظام بعدی،, نظام بعدی تا برسد به استنبات و استخراج قاسخهای دین به نیازها مسائل و پرسش‌های بشر که اینها یکی پس از دیگری مطرح میشه هر محضر مبارکتون که میخوام عرض کنم که یعنی اینا همه در جای خودش استخراج شده و به آمده همه مشخص هستش خب این در نظام سازی اسلامی محتلی بر تفقه جامع هست لکن شما ببینید برخی از دیدگاه ها در نظام سازی اسلامی هم مطرح میشه بودا جمعه کلیگویی داره یعنی مراحل و گامه های عملیاتی اینها مطرح نمیشه یعنی اساسا مراحل و گامه های عملیاتی و قابل پیاده ساز در خارج رو نشون نمیده تبین نقشه راه صورت نمیگیره آق منظور مرحله بندی ها انجام نمیشه گام ها مشخص نیست بیشتر به عنوان سخنرانی های تیزر تبلیغاتی مناسب هست ما از این مرحله الحمدلله عبور کرد الان این گام ها استخراج شده دقت میکنید البته هستند کسانی که هنوز کلیگویی گویی میکنند در کلیات بودند ولی لاغر در تفقه جامع به حمد تبیین نقشه راه و مراحل ساخت و پرداخت نظامهای اسلامی و مبنای کلان نظریه اتفق جامعه و اینکه الان در چه مرحله ای هستیم و چه مراحل رو پیش روی خودمون داریم دست کم این ار محزدی در اینجا صورت گرفته ولی تبیین اون طبعا ساعت‌ها وقت لازم داره که ما طبیعتا چنین وقتی رو در اختیار نداره. خب در ادامه جلسه ما دو تا کار دیگه میخوایم انجام بدیم با زمانی که داریم حالا ما تا تا چه ساعتی فرصت داریم نه ظهر ها خیلی خوب باشه ما تو زمانی که داریم دو تا کار بخوام انجام بدیم یکی اینکه من یه نکته‌ای رو اینجا می‌خوام عرض بکنم که به نظرم نکته مهمی هست که عرض خواهم کردیم رو نکته قسمت دوممشم میگزاریم در اختیار شما که اگر فرصتی وجود داشت بفرمایید استفاده نکته نکته‌ای داشتید بفرمایید استفاده بکنیم فرصتی هم بود اگر بلد بودیم پاسخ می‌دیم خدمتتون خب ببینید اون نکته‌ای که حالا می‌خوام تو این فرصت اشاره بکنم این هست که ما در بخش‌های قبلی درباره جامعه تفقه جامع سخن گفتم آقا گفتم این شش قسمت هم برایش مذکر کردیم برای این جامعیت شش عرضه مذکر کردیم. اساساً امتیاز تحقق جامعه به هم جامعیتش. هم جامعیت در مهام تحقیق که که دیم همه دیم رو در بر میکرده، همه منابع، همه ها و هم جامعیت در مهام تحقق. یعنی همه ی سطوح زندگی و همه ی زبایا که توضیح دادیم طبقات ساختمان و همه قسمت قسمت‌های هر طبقه. دقت کن خیلی. اما اگر امتیاز تفقه جامع به جامعیت اون هست، قوام تفقه جامع به اجتهاد و تفقه یعنی اگر اجتهاد و تفقه وجود نداشته باشه، اساساً چیزی به نام تفقه جامع وجود نداره، تا بخواد جامع باشد یا جامع نباشد. به عملیات استنباط و کشف دین و آموزهای دینی اجتهاد پس اجتهاد عملیات استنباط و کشف دین و های دینی. در تفقه جامعه نقش اجتهاد نقش اساسی و بیبدیله تا جایی که میشه اون رو محور تفقه جامعه نامید. و این نیست مگر به خاطر اینکه اجتهاد ابزار مشروع اسلامشناسی تخصصی و من این سطوه اسلام شناسی نشون می ابزار مشروع اسلام شناسی تخصصی و سامانه‌ی نظریه پردازی و استدلال ورزی به من در حجیت و اعتبار دینی است مشاهده می کنید اینجا سطوح اسلام شناسی و تفقه در دین مطرح شده اون قسمت مستطیلای غیر رنگ مخصوصینش اسلام شناسی مقدماتی هست بعد اسلام شناسی عمومی بعد اسلام شناسی نیمه تخصوصی و بعد اسلام شناسی تخصصی یعنی همون اسلام شناسی اجتهادی فقیهانه و عالمانه اون قسمت‌های قبول رو فیلن کار داریم چون اصلا فرصت نداریم بهشون بپردازیم الان تو همین قسمت چهارم هستیم که برای تفقه در سطح تفقه جامع ما نیازمند یه همچین که هستیم. یعنی اسلام شناسی تخصصی در تعریف اجتهاد با لحاظ جامعیت اون ما میتونیم اینطور بگیم متناسب با تفقه جامع بگیم تلاش نظری روشمند با تمام توان چون اجتحاد این تلاش با تمام توان رو میخواد جزء اصلا معنای لغوی اجتحاد هست تلاش نظری روشمند با تمام توان برای فهم آن چه خدا نازل فرموده و کشف دیدگاه اسلام و نظریه پردازی اسلامی بخوام خلاصه تر بگم همونی که خبرا عرض کردم عملیات استنباد و کشف دین و آموزهای دینی اجتهاد وسیله و ابزار اسلام پجروی و اسلام شناسی تخصصیه لذا انسان دارای ملکی استنباد و اجتهاد یعنی انسانی که افضار کار اسلام و اسلام پجروی تخصصی رو در اختیار داره خوب تا خوب لطفاً روان داشته لحظه اجتهاد پایان راه طلبگی نیست اجتهاد آغاز راه طلبگی است به این نکته خوب توجه کنید یه نکته نادرست در ذهنمون شکل گرفته طلبها میگه اجتهاد پایان راه طلبگی نیست نه خیر اجتهاد آغاز راهه آنچه شما تا پیش از اجتهاد می خونید همه مقدمه است پرواز هنوز شروع نشده اینا حرکت های هواپیما روی باد پروازیه پرواز انتهای این بان آغاز میشه و تازه از اون موقع سفر رو میشه دقت بفرمایید مجتهد اسلامشناس نیست مجتهد فقیه نیست بلکه مجتهد کسی که ابزار اسلامشناسی تخصصی را دارد مجتهد کسی که مهارت ققاحتی در دین رو داره ابزار تازه دستش آمده کسی که مجتهد نماشد و تخصصی در اختیار شها نداره دقیقا پر جرس کنم مجدن کسی که ابزار رو داره این ابزار در افتیار شده. که باید این ابزار و از این وسیله استفاده بکنه پس تا پیش از رسیدن به درجه اشتهاد اساساً شخص فاقد این ابزار کار هست و قادر به اسلام شناسی و اسلام فقهی تخصصی نیست. در نتیجه اگر در امور نظری و تخصصی و در مسائلی که محل ابداع رای و ابراز نظر متخصصین حقیقی اسلام شناسی و اسلام فقهی استش، قائل به رأی و نظری هم بشه، رأی و نظرش هم از دید عرف و عقل متبر نیست چون میگن تو متخصص نیست. رأی و نظر غیر متخصص اهمیت نداره و هم به لحاظ شرعی واجد حجید به معنای اعتبار نینی نیست. در نتیجه قابل اصناد و انتصاب به اسلام هم نیست یا به اصطلاح صحت الانتصاب علی الاسلام نداری. رفقه های توجه هم با میدونم باشید آخر بحث هستش. ببینید توجه هم ببینید مهمترین سمره اجتهاد چیه؟ مهمترین سمره اجتهاد عبارت است از دستیابی به که از حجیت و اعتبار دینی برداره روحه هایی که کفایی خاندن میدونن جناب آقود و خراسانی در انتهای کفایی در خاتمه وقتی میخواد اشتهاد میتاریخ کنه میگه تحصیل استفراق البوز فی تحصیل علی علیه کنشد استفراق البوز یعنی نهایت تلاش. به تحصیل حجه تمام تلاش نهایت تلاش صورت بگیرد در به دست آوردن حجه پس این سمره از به دست آوردن امری که از حجیت به اعتبار دینی برداره خب یکی از مهمترین آثار و امور مترتب بر حجیت دینی عبارت است از سه انتصاب و جواز اسناد یک امر به خدا و اسلام یعنی فقط شما چیزی رو میتونید به خدا نسبت بدید به اسلام نسبت بدید که حجت باشید که حجت داشته باشید بر کشم بدون وجود چنین حجتی، نه به لحاظ حکم تکلیفی جایزه نه به لحاظ حکم بزئی صحیحه که چیزی رو ما به خدا دین و شریعت نسبت بدیم و از محظاتون که این جایز نیست اگر کسی با من باشه لحظه با من باشید اگر کسی خود استفاده که اگر کسی اگر کسی که... تو اگر کسی آمد و بدون حجیت و حجت شرعی امر رو به خدا و دین نسبت داد به این میگه چه به این کار گرد چی بد آگاهه میگه فعل که ما برون حجت شرعی امرو به خدا نسبت بدیم. امرو به دین نسبت بدیم. ما کم کار رو انجام میدیم؟ فکر نمی کن. روزانه ده. کار رو انجام میدیم. حتی باید سخمران ها، سخمران بالای ممبر دقن در مطالبی رو میگه. میگه اسلام نظرش اینه، نظر دین این هست. نظر وقتی نیاز پایین بشید و آجام شما از کجای اسلام این ازدخراج کردید. میگهجا ا می حرف بدی زدم. میگم نمیم حرف بدی دل از کجای اسلام در اینو خیلی حرف جالب بود فقط از کجای اسلام بود؟ کجا اشتباه گفت آمد اشتباه چیکار دارم تو گفتی نظر اسلام این است از کجای اسلام اینو به دست آوردی؟ او هم نگه مشتهدی که به دست آوردی اگر مشتهد نیستی مقلدی یعنی از یک مشتهدی این حرف گرفتی. اگر مشتهدی دل این رو بگو به این دلیل. من میگم نظر اسلام این است. اگر مشته استی ایستی مغلبی، بگو فران در کتاب علمی خودش این رو آورده با اضطلال ثابت کرده، نظر اسلام این هست. خب شما این ما چقدر این حرفا می از این چکای می میکشید به نام اسلام؟ اونقدر با می دونید زیاد هست از این حرفانگه. حالا ما که تازه طلبه هستیم، غیر طلبه ها چقدر متلیند ما چقدر کارا میکنن کنند، اموری به اسلام نسبت ده خیلی بود. اینا همه میشه بدعت و تشریع محرم چرا چون بدون حجت شرعی امور رو ما به اسلام نسبت دادیم خب حالا هرگاه شما بخواهید با من هست آ وصف اسلامی را به هر چیزی بچسبونید و ملصق بکنید حجیت میخواهید حکم اسلامی نظریه اسلامی علم اسلامی علوم انسانی اسلامی نظام سازی اسلامی تمدن اسلامی تفکر اسلامی معماری اسلامی هنر اسلامی هر برساختی که هر امری که موصوف و متصف به صفت اسلامی بشه حجیت داره. و اگر میخواهت حجیت داشته باشه باید با اجتهاد بود یعنی به طریق مشروع و ضابط مندی کشف شده باشد از دین خدا پس اگر ما بخوایم به ساخت و پرداخت یک نظام از نظام اداره کننده حیات بشر بپردازیم و اون رو به اسلام نسبت بدیم بگیم آقا این نظام اقتصادی اسلام، این نظام سیاسی اسلام، این نظام اجتماعی اسلام، اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم ما نیازمند حجیت هستیم و اگر میخواند به خود چیت برسیم باید به اجتحاد برسیم بدون اجتهاد قدم از قدم نمیشه برداشت لذا خطاب این حقیر به همه عزیزانی که میخوان به پاسخگویی به پرسش های بشر معاصر در ساحات مختلف بپردازند وارد عرصه تولید علوم انسانی اسلامی بشن وارد عرصه استخراج سبک زندگی اسلامی بشن میگن آن سبک زندگی اسلامی رو مادر را این هستش وارد عرصه نظامسازی اسلامی بشن وارد عرصه ساخت و پرداخت تمدنی به نام اسلام بشن این نیازمند اجتهادن بدون اجتهاد نمیتونن این کار رو انجام بدن. بله کارهای مقدماتی میشه مطالعات مقدماتی میشه، فراهم کردن ها میشه، اما اونجایی که شما می‌خواید که وارد عرصه بشید، اجتهاد میخواد. یه لحظه تذکری بدم. رفقا، اجتهاد سخنان و تعاویر زیبا، تقسیم بندی های مختلف، یکسره درباره فقه فقط صحبت کردن نیست. اجتهاد یعنی بتونی حکم الله رو دیدگاه الهی رو به روشی مشروع از ادله استخراج کنم از منابع استخراج کنم اینم وقت بلدش ممکنه من روزها بتونم در قباله و قاحت صحبت کنم اما یه مسئلهی ساده رو نتونم استنباط کنم من مشتاق نیستم تمام شد تقلا می‌کنم که اگر هوا خوب باشه این مطلب خب فلذا ما باید به همه باید تلاشش رو به اشتها رسیدن و مثلا مبارکتون که تا به توانن وارد این حساب بشن اگر میخواهید باری از وارد این وارد بشید اگر میخواهید پایه‌ها رو بسازید بله کارهایی که به در و دیوار و و این مربوط بشه اینا اشتهاف نیست اما جایی که پایه میخواد ساخته بشه اشتها لازم داره و همه مهم در جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از مناصبش مجتهد میخواد و ما مجتهد مدیر انقلابی کم داریم بسیار کم داریم چون این حرف‌ها برای انتخاب رئیس قوه قضائیه با چقدر با مشکل مواجه مجتهد مدیر انقلابی یعنی مدیریت هم داشته باشه مجتهد مدیر انقلابی گویا مجتهد هست مدیر نیست انقلابی نیست گویا مدیر هست هیچ کدوم نیست گویا همه شو هیجاش میلنگه مجتهد مدیر انقلابی ما اینو لازم نداریم بیات تو این حرفه من دیدم بعد از پا میگن که حالا لازم هم همه لازم نیست برای مجتهد بشه میگه یه جووری میگها همه رفتن مشتهد شدن و حالا همه ندیدن. کی رفتن مشتهد شدهه. و چند چند نفر هستند که پای این کار کارواریزن و به آن مشتهد بشن. ممکنه کسی میگوا با, با این اشتهاد مستلح نمیشه نظام سازی کرد نمیشه تولید علم المد سازی کرد. این اجعاد احکام میشه به دست آو. این عرصه اشتهااد خیلی بالاتر داره. پاسخ این است که بله درست میفرمایید. اشتهااد مستلح این کمه. اما شرط لازمه گام اوله اگر ما همین اشتغال رایج رو دست نیاریم نمیتونیم به اون اشتغالهای مرحله بالا تر برسیم به اشتغال تمام توری برسیم. تفرم با از پل دریت نمیشه پر پر دریت مام و از پل دریت رو رد که. لذا همه ما اگر میخوایم گام های اساسی برداریم باید به سمت اشتغال حرکت کنیم. امام خمینی شهید سعد، بزرگ دیگر که نظام سازی کردند. اینا مشتهد بودن بلکه مشتهدین العاده قبیه بودن و نقطه پایانی نقطه پایانی همین نصم از هستش و آن این که میگن این نقطه دلت خوشی نقطه پایانی پایانی نقطه پایانی از بخش پایانی بخوایید بیشتر تزید. بعضی هم میگن نقطه آشمان دلت خیلی خوشه. سه در جای گرم بولن میشه اجتحاد ما من اجتحاد چی میگنم این شوخی بله شاید شو مثلا سال اول دروب و اوقوز شاید به ذهن اون میومد ما مشتاید بشیم هر چی جلوتر آمدیم این نیست اجتهاد در کاره است میگن اینقدر اجتهاد دوره که خدا میخواد میگن رسیدن به اجتهاد مثل کندن کو با موژه شما شما نشهید که بعضی میگن اگر مجت اشتحاد مثل کندن کو با موجه میمونه. آقا مرد حسابی میشه با موجه کو و کناچه هر بیه آقا میسه هم میگه باید تیشه ای چیزی با موجه حالا بذارید حالا میگهد اینقدر غیر ممکن روح به این حرف ها گوش نکنید باب اشتحاد مفتوه باب اشتحاد مفتوره. اما به شرطها و شروطها شرط, ها شروط ها. شرط اول از همه جدیت خودتونه. جدیت، تلاش، کوشش و تمحوظ یعنی ممحدتون کار باشید صد جا کارت نکشید دویست جا ف... مشغول فعالیت نباشید هزار جا رفت آمد نداشته باشید ممحدتون همین کار باشید تو کار اشتغالی، فقاهت، خوصوب، اینها رو بپردازید دو، برنامه درست در اختیار داشته باشید س تحت اشراف یک مجتهد مسلم حرکت بکنید اساسا ما ها که میریم در خارج برای چیه برای اینکه تحت اشراف یک استاد کامل یک مشتهد مسلم قرار بگیریم در خارج این هم. هدفه پس این سه چیز چیز اگه داشته باشید مشتهد میشید خیلی سریعا میشید تمام این اعاظم ما اینا در جوانی مجتهد شدن هیچکدوم به سن با پیری مجتهد نشدند اجتهاد مال جوانی است شما بودن نه ما با بسیاری از اینها سالها در تماس بودیم با مراجع تعلیم، سالها گفتگو کردیم، بحثای بین اون داشتیم. بله افرادیشون حتی خیلی باهوشن، افرادی کمتر، افرادی هم متوسط. هر کسی باهوش و داره متوسط به بالا میتونه مشتاق بشه. نابغه لازم نیست، بله اگر نابغه باشه سریعتر حرکت میکنه. ولی لزوم نداره نابغه باشه. هر کسی با استعداد و حافظه گوش و حافظه متوسط به بالا این میتونه به اشتهاد برسید مهم نیست چون همهت شده باشید اصلا جد درنامتون باشه. اگه بدانید هر چی دارید میخوانید تا کار میکنید مقدمی است برای اشتغال بدانید حتی اگر ممبر هم میخاید برید یه ممبری این و مسلط باید مشتاق باشه چرا میخواد ممبر خودشو درست بکنه برای ساختید ممبر بعد آیور روایت روش بذاره از اینا بعد استنباط بکنه برامردم بگه خب خیر مشتاق که نمیتونه این کارو بکنه که مثلا شما یه روایت میبینی میبینی بکشه میگه آقا نظر اسلام این است خب درست نیست این نظر همین روایته و معارضاتشو اعمال قواید جمع عرفی کن اگر با قواید هم عرفی حل نشود تکلیف روشن بشه اینجا وظیفه چیه اند تعارض و تعاد و تضاحمات و مسائل دیگر رو باقی دارد، داره دارد. داره اونها رو بعد اهمال کرد حکومت هست ورود هست اینا باید درسی در بشه نمی شاید که گره باید مبین ممبر باش درست بکنیم دقیقاً فرچی هست یعنی شما ممبری هم بخواد بشید مجتهد باید بشه. منبری هم بخواد منبری واقعی منبر بسازید بحث. بس تا برسد به این به اینکه بخواید نویسنده بشید استاد بشید هر میخواد بخواید بشید ما فی شما مجتهد جوان دهان شناس لازم داریم که مسائل امروز رو بشناسند و به توانم پاسخ بدهند لذا این شرط رو یعنی شرط لازم برای ورود به عرصه نظام سازی رو فراموش نفرمایید شما طبیعتا در این ها حضور پیدا می‌کنید که با این بحث‌ها آشنا بشید و بدانید یکی از های این مطلب همین اجتهادی است که خدمت شما عرض کردم خب به همین مقدار بسنده میکنم. ان الله که موفق و باشید در خدمتتون هستیم اگر پرسشی باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما اینترنت دارید ببینید تون کانال حسم مطلبی که ما گفتیم یادم چی اچا؟ فایل رو این طرف می‌کد، فایل آها. یه که اینجا تفکیکیشون نبود. خوش نبود. خیلی خوب. آها، فقط تفکر جاو تعریفش بود خیلی خوب. هر وقت که برادران همون هم داشته باشید لاخر از چی بهتر است. ب. خیر، که موفق و موید بشید. ان من در خاطر که مطلبی باشد در هم سوال سواله باشه مثلا نهار چه ساعتیه مثلا من من تا حالا پاسخشو نمیدونم بله جا ببینید از نگاه ما اینجور هست که بذارید من اگه بتونید ببینید ببینید هاجا الان اینجا رو شما نمی قطعا نمی بینید ها؟ لاغت به اینجا بشین پس از د شما یه نفر بی بشین. این شد نظام اسلامی دقت میکنین جعرض میکنم. از این نظام اسلامی خروجی گرفته شده کوشی کجا رفتی؟ الان می بینی؟ من نمی بینی <تصفيق> خیلی چون شما خودم که اصلاً نمی بیننتی دارم می که حفس هم تققرران لقششه مزارتون که بعد شده علوم و معارف روبنایی دقیقاً پنجاز می‌کنم قسمت بالا علوم و مطالعات انسانی اجتماعی و فرهنگی شامل روانشناسی جامعه شناسی اقتصاد سیاست مدیریت تعلیم و تربیت و غیره قسمت پایین دسته دوم هم بفرمایید که فنی مهندسی علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی خیلی خوب ما در این قسمت نظام سازی می‌کنیم بعد از اون میریم سراغ تولید علم تولید علوم انسانی اسلامی سوال یعنی آیا بر اساس همون چارچوب های کلانی که در نظام سازی تنظیم میشه و تدوین میشه دیگه ما میتونیم تولد علم بکنیم نه اینطور نیست فرض فرمایید که ما نظام اقتصادی اسلام رو استخراج بکنیم یعنی خطوط کلی رو بیرون میکشیم ها چارچوب کلان مشخص میشه اون قوانین و قواعد کلی مشخص میشه در اقتصاد اسلامی که چیا هستن تازه بعد از اون مبتنی بر اون چارچوب کلان و اون خطوط کلی که وجود دارد باید مشغول به پژوهش و نظریه پردازی بشیم خب حالا در اینجا ما برای پژوهش و نظریه پردازی یک بخش از منابع ما عبارت هست از عقل و نقل ها عقل و واحی عقل قرآن و سنت اما آیا با همین ها میتونیم ما مثلا اقتصاد علم اقتصاد درست بکنیم نه این طور نیست ما از تجارب متراکم بشری در طی قرن ها هم استفاده میکنیم انسان ها براختی تجربیات اقتصادی دارن، آزمایش هایی کردند آزمون و خطا هایی داشتند ما از نتایج دستاوردهای اونها استفاده میکنیم خب حالا که این طور شد اینجا در واقع به نوعی رجوع میکنیم به علم اقتصاد موجود و متعارف یعنی علم اقتصاد سکولار نه از این جهت که ما علم اقتصاد سکولار رو به رسمیت بشناسیم نه از این جهت که جمعی آدم نشستن اینا کار اقتصادی کردن نظریه دادن و این نظریات چون رفته تو جوامع مختلف اجرا شده و بازخوردهایی داره ما از این هست نگاه میکنیم پس الان اینجا شد دو تا اقتصاد شد دو تا روانشناسی شد دو تا جامعه شناسی یک روانشناسی متعارف یعنی همون چیزی که تو دانشگاه‌ها وجود داره یک روانشناسی اسلام دو روانشناسی اسلامی که ما می‌خوایم بسازیمش روانشناسی اسلامی که می‌خوایم بسازیم پایش این نظام اسلامی هست خب بر مبنای اون علم روانشناسی اسلامی میخواد ساخته بشه که این علم روانشناسی اسلامی هم از قرآن استفاده میکنه هم از سنت استفاده میکنه هم از عقل استفاده میکنه و هم بفرمایید که تجارب متراکم بشری و سیره اوغلاوی و مسائل از این قبیل همه با هم کمک پس ما جایگاه روانشناس، شناسی متعارف اقتصاد متعارف و جامعه شناسی متعارف رو اینجا میدونیم تا برسیم به ساخت کامل علوم انسانی اسلامی طبیعتاً با اینها ما تعامل می‌کنیم. بله نیازی نیست که یک نفر به تنهایی جامعه همه علوم باشد دقیقاً می فهمون چی کنم این حتی حتی اگر شما مثلا تو همون روانشناسی هم دکترای روانشناسی هم بگیرید باز در یک رشته ای از رشته های روانشناسی و در یک گرایش خاصی از اون رشته دکتراتونی گرفتید گرایش بعدی چی؟ گرایش بعدی چی؟ رشته بعدی چی؟ همش هم تو روانشناسی ها؟ دقیقاً می کنی چی ارز کنم می بگم یعنی عملاً غی که انسان بخواهد که جامعه همه علوم بشود حتی توی عرصه همون روانشناسیش اینقدر شرط کنم ولی اینجاست که همکاری حوزه و دانشگاه معنا پیدا میکنه بله ممکن است در اینجا حوضویانی که تحصیلات دانشگاهی دارند خیلی به کار بیان در مسئله شناسی و موضوع شناسی یا دانشگاهیانی که با ادبیات حوزه بی آشنا هستند مثل دانشگاه امام صادق و امثال زالک اینا خیلی به کار بیان و کمک بشوند برای موضوع شناسی و مسئله شناسی ولی سراخر ما با مجتهد نیاز داریم که بتواند دیدگاه های دین رو از این طرف استخراج بکنه از اون طرف موضوع و مسئله است که هر که از اون طرف پیش داده شده حالا اون موضوع و مسئله رو اوصای میکنم خودش رفته باشه متخصص شده باشه <تصفيق> یا در مشورت با جمعی از متخصصین در اختیارش گذاشته باشن. بله. ببینید حاجا ما که مکانیکی و مسائل نگاه نمی کنیم که نمی تو الان چقدر بلدی انقدر دیگه جلوتر نیستی فا این که نیست بالاخره الان مشتهده امروز با مشتهده هزار سال بیش که فرق دارد مشتهده هزار سال بیشن برای زمان خودش خیلی خوب بود اما مشتهده جوان زمانشناسی امروز این اهل مطالعه است اگر میخواد تو عرصه روانشناسی ورود بکنه بلا اینکه میخواد با اصلاح دانشقان جلسه داشته باشه قبل از ملاقات با اونها ده ها کتاب روانشناسی میخونه. تا گفتم تعریف کنم شما در هر رشته دانشگاهی حالا بنده بیش از یک دهه است که مقطع دکتری دانشگاه تدریس می‌کنم خیلی خوب دیگه بالاترین سختشه دیگه معمولاً کلاس‌های دکتری بنده اینجوریست که محبت دارن ارمن اجازه می‌گیرن اساتید دانشگاه اعضای هیئت علمی اینام میان حضور پیدا می‌کنن تو کلاس‌های بنده و دانشجوها مثلا جای دیگه هم میان یعنی ما معمولاً کلاس‌های دکتری یک نفر یا دو نفره کلاس‌های بنده بیش از 15 نفر بر گزاره میشه معمولاً رواال این هستش میخوام بگم در تماسم دیگه لاقل بیش از یک ده هست که کمتر از دکتری معمولا قبول نمی‌کنم برای تدریس با این سطح مواجه هستم در این سطحی که دانشجوم دکتریه و کنار او اعضای هیئت علمی همون رشته هم همون هم بحث رو مطرح میکنن و گفتگو میکنیم با هم دیگه حالا البته تو این ها بیشتر رشته مدیریت میده و رشته اقتصاد هر که در اون صد من مشاهده میکنم دیگه خیلی خوب خود اینها میگن تو رشته ما مثلا فرض چهار کتاب پنج کتاب اصلیه از اول رشته تا ته رشته پنج تا کتاب اصلی و مادر داریم وقتی من اون پنج تا کتاب مادر رو مطالعه میکنم وقت میذارم همت میکنم و اجمالا متوجه میشم دیگه وقتی سر کلاس دکتری حضور پیدا میکنم دانشوی من که دانشجو دکتری همزمان داره لیسانس هم تدریس میکنه با علایق اساسی داشت هم که اونجا حضور دارن کاملا حرفهومی فهمیدن کاملا حرفهومی فهمی. پس بس شدنی ادا شدنیه فقط ببینید مکانیکی نیست این مسائل اینقدر که ها شما مثلا دکتری داری یا نداری با مطالعه خیلیش به دست میاد بله تو هستم. ببینید حالا این توی این نقشه الان این نبود. کامل کاملترش این هستش اعظمحضرتون که که این بخش دوم که ریاضیات هستش و طبیعیات هست اونجا فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و کیهان شناسی و غیره و فلان اونام حالا جای خودش تو این نقشه کلان وجود دارد و اینام میاد اثر خودشو رو میگذارد ما مثلا تو هم رشته های فنی مهندسی یا رشته پزشکی هم سال زالک نمیگیم که یعنی از قرآن کریم میخوایم اینا رو به دست یا از ربات دست سخن در اون نظام سازیه ما اگر نظام سلامت و درمان اسلامی رو استخراج کردیم که بابا اسلام برای سلامت برای درمان یه همچین چارچوب کلانی رو در نظر دارد یه همچین خطوط کلی رو دارد بعد از اون باید, باید رفت تحقات پزشکی انجام داد باید پجروهش کرد بعد آزمایش کرد اون همه باید انجام بشه جلو اون که نمیخوایم بگید، اون باید حتما انجام بشه الان شما فرض داشتن که یکی از اشکالاتی که به طب سنتی امروز وارد هست این که شخصی که طبیب سنتی امروز هست میخواد بره حرفای 700 سال پیش رو که یه زم... کسی تا... تو اون زمان مثلا بر تحقیقات کاری رسیده همون رو بیاره بیار اجرا بکنه به قول یکی از آقایون که الان خدا رحمتش بعد دنیا رفته است ایشون چون مؤسسه دانشگاهی تپسنتی ایران بوده. یادم هست اون که گاهی سفرهایی با هم دیگه می‌رفتیم این میگفتش که رئیس تپسنتی بود تو کشور دیگه ایشون میگفت اگر ابو علی سینا امروز بود پای لپتاپ نشسته بود و همون که زمان حیاتشون هم تبلت اینام نمیدید لپتاپ بود فقط هر واسه که میگفت اگر ابو علی الان پای لپتاپ بود داشت با اینترنت جدیدترین مقالات علمی در عرصه پژوهشی رو سرچ می‌کرد دقیق میگفتش ارزش می‌کنه ابو علی سنا دست آزمایشش می‌زد و خب. اما طبیب سنتی امروز این اصلا توان این کار رو نداره توان این کار رو نداره که بخواهی این کار انجام بده صرفا همین است که ببین آها تو کتاب مثلا قانون در کتاب فلان در کتاب فلان سر کتب که قدیمی چی آمده همون رو باید مطرح میکنه جلو نمیره دقیق می‌کنی چه کنم ما حرفمون اینه تحقیقات پزشکی باید انجام بشه مطالعات آزمون خطاها همه باید انجام بشه اما در چارچوب نظام سلامت و درمان اسلامی در چارچوب این نظام بله خینش ان که موفق در خواهی جس این بعد از سازی در ببینید به لحاظ نظری بعد از طراحی الگو و کار نظری این میشه اون کار رو شروع کرد تولید علم آغاز میشه دهقت من چه مت اینج یه دیدگاه دیگری هم هست مثلا شهید صدر علیه الرحمه ایشون در اقتصادنا این بحث رو مطرح فرمودند که ما برای اینکه بخوایم به علم اقتصاد برسیم باید نظام اقتصادی رو در جامعه ایجاد بکنیم، روابط اقتصادی جامعه رو اسلامی بکنیم، بعد جامعه‌ای که روابط اقتصادیش اسلامی شد اسلام حاکم شد بر روح کلی این جامعه، وقت این جامعه تلاش میکنه قواعد اسلامی رو اجرا بکنه، بعد ما وقتی تلاش میکنیم علم بومی این جامعه رو در دست در واقع به نوع علم اسلامی دست آوردیم. جوی بحث که شهید آیا علوم انسانی اسلامی قبول داشت یا نداشته؟ شهید صد به علم بومیه. او تا با این واسطه میگه ما اون نظام رو در جامعه اجرا میکنیم. حالا اینکه چقدر این شدنی من کار ندارم ها من نظرمه شاید فقط عرض می‌کنم بعد‌ها شنیدیم که آیه دکتر داوری اردکانی هم یه چیز شبهه این گفته بود که مثلا اول جامعه بعد اسلامی بشه بعد مثلا ما بتونیم به تولد علم بپردازیم حالا اگر با مصاحبه بگیم ایشون اینطور گفت هر محضر مبارکتون که برتقدیر پسش شد آقا یه بار دیگه بگم بلهاظه نظری بلافاصله کار انجام میشه یعنی بلافاصله بر طراحی نظام شما سراغ تولد اما به لحاظ عملی نه این باید این نظام تو جامعه به اجرا در بیاد ار عرب مذارتون که با اون نگاه شهید صد مثلا یا نگاه آقای دکتر داوری ارده کنی بعد از دل این جامعه اون علم اقتصاد بیرون کشیده بشه در واقع علم توضیح دهنده واقعیات جاری در جامعه است به این شکل خیلی محفظ باشید خب ظاهرم دیگه پرسه شید نیست بلا جام خب نکته خوبی فرمان ببینید این اینم یک کلمه توضیح بدم حالتا دوستان یه وقت ما چند دقیقه دو سه دقیقه باقی موده اینه هست که ما یه رحمه که یه مقصدی رو می توانید از منابع یعنی قرآن سنت و عقل دست در این شکلی نیست که این اسلامی. ایش مشکلی نداره و قرآن دسته دوم امور است که ما عیناً از منابع به دست نمیاریم ولی از منابع دیگری بدست به دست که مورد رد و منع اسلام نیستند و من خود اون بحثا خود اون بنابراین و خود اون نتیجه هم مخالف نظر اسلام نیست شما الان چه پای هست چه خب این کسی که مقاسب مثلا پایی ده باشه باشه پونده باشه تموم کرده باشه پایی ده تموم کرده باشه مقاسب پایی ده کرده نه دی خب – خداشو خدایشو مثلا میبیندیم خدا اگه اشتباهم بگم, بگم متوجه نمیشه کسی که من اشتباه گفتم خیلی خوب در مقاسب ده این های شش جلدی چاپ کنگره توسط جد شیشویش آ اونجا بحث شرط و جناب شیخ مطلع است. در اونجا شروط رو مطرح کرده به عنوان شروط صحت شرط یکی از اون شروط عدم مخالفت با کتاب و سنت است و اونجا این بحث مطرح میشه که آیا شرط باید موافقه کتاب و سنت باشد یا مخالف نباشد فقدن با هم یه یا نه موافق باشد موافقم یعنی تو خود کتاب سنت آمده باشد اما مخالف نباشد یعنی همین که ناخازگار نباشه در زد نباشه کافی اونجا این بحث و ها مطرح میکنن که عدم مخالفت کافی است عدم مخالفت کافی است از بندی روایات دیگر هم همین معنا میشه استفاده بگه مثل من سنتم سنتا حسنه روایت من سنتم سنتا حسنه میگه یه سنت هتنی رو شبهه ها میکنید از کتاب رسولت در نیه بودید. شماهایی سر نتیجه کردید. اما حسمه هستش خوبه براتون صواب نمیشه میشه ما از اینها میتونیم استفاده بکنیم که پس یا این مطالب رو این از کتاب رسولت رو آگاه استخراج و یا اینکه اگر در کتاب سنت و عقل نتونستیم استخراج کنیم ما نتونستیم نمیگیم نیست ما نتونستیم استخراج کنیم نتونستیم برای یعنی سیانیم از منابعی دیگر و به روش هایی که مورد تایید شریعت باشه، دین باشه استفاده میکنیم و بعد باید مواظبت کنیم که خروجیمون هم مخالقتی با شریعت نداشته باشه، بلکه تو بحث نظام سازی باید بتونه به نحو حد اکصلی قداص و مقاصد دین رو هم تحصیل بکنه و به دست بیاره. طبیعتاً یک بحث مفصلی هست اینجا، جای طرحش نیست. خیلی خوب به همین مقدار بسنده میکنیم، اگر کسی امر داشته باشه دیگه خصوصی و بین اون در خدمتتون هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم و